الحمد لله رب العالمين و صلی اللہ علیه محمد و آله طیبین و طافرین المعصومین و لعت دائمت و عبادت و اکمعین اللہ و فعلا و چمع المشتفلین و رحمنا و رحمت کیا رحمه رحمه رحمی متعرض بحث میته در ما لهو نفسون سائله و ما لیسه لهو نفسون سائله, سائله و به مناسبتی هم به اصطلاح گفتیم که این مسئله رو به روایتش نگاه کنم این مسئله فعلا ما از به لحاظ مسئلهی بیرش میخواییم اما روایات متصدی شده رو مسئله نجا صدبت ها را این از که روایتی هست که اینا پیدا فرمونه محبت کردن که در اینجا این دوست رو مرحوم شیخ خور در جلد اول تهارد عبواب آثار سعر به معنای آبی که ملاقی میشه با بدن انسان یا حیوان سعر بشه. در باب نه این باب رو برای سعر فارب و حیب و اغایه و اغایه همین یه نم و زق و اینم اغرب و اشواهی عن وسیله اصطلاح سوء رویشون در اونجا به کار برده معلوم میشه و در باب آثار مورد معلوم ایشون هیوان رو زنده فرض کرده اما فرضشون توی بحث بعر هم ایشان داره تو ابواب ما مطلق در بحث بعر هم ایشان داره اما در بحث بیر معلوم میشه مرده شو فرض کرده و لذا ایشون بین روایاتشون تفاوت داشته اما در عباب نجاسات با عنوان تهارت میته محص روی میته بوده این یک نکته روایتی بود که اصلا مرحوم شیخ داره نمیدونیم کجاییشون ایشون در اونجا کندی روز خوندیم روایت رو بلکه چیز عجیبی که وجود داره در باب ده عباب آثار باب ده که همین شاق آیون آلو بجنده یک میشه صفحه دی... 241 و بعد در باب ده حدیث اول که تهارات سعر در این باب اونجا هم تهارات سعر مالی سلحو نفسون سائله و این مات البته سعر گرفته و مات که این میکه باشه حدیث اولی که در اون, در اون باب نقل کرده حدیث امار سابادی که اینجا هم داره توی نجاسات همین بابی که دو سه روزه خونیم در اونجا داره حدیث دوم حدیث حفص بن قیاسه که اینجا هم داره در اون باب فقط در اونجا داره انهو ان عبی جعفر انهو از کرده شیخ توسی به اسنادی، ان محمد بن احمد ابن یهیان بعد داره عبی جعفر ایشون در اینجا داره مرحوم سال و سال یعنی احمد بن محمد بن ایسا ایشون ابو جعفر رو به احمد اشعری داده. ما به ذهن رو میاد که این اهم اح... یعنی تفسیر صاف وسائل در کتاب نداره ما به ذهن رو میاد که ابو جعفر در اینجا محمد احمد برقی باشه خب حدیث دو را هم در اینجا ایشان آورده حدیث شماره سه حدیث ابن مسکانه اینجا هم در این باب نجاسات آورده حدیث شماره چهار محمد میعو و محمد میحیار رفعه او اینجا به شماره 5 آورده نجاسات به شماره 5 آورده حدیث شماره شیش اونجا رو باید علی که اینجا به شماره هفت آورده این کار از در وسائل نسبتاً کمه انصافش کمه اما با کمیش اینجا واقع شده دو تا باب ایشان قرار داده یکی در ابواب الاسار در سعر مالی سلحو نفسون سائله یکی هم در نجاسات در میته مالی سلحو نفسون سائله یا مالی سلحو لیکن این تا باب به استثنای یک دانه حدیث همه باید هم ند... همه رو برده یعنی تمام احادیث باب ده آثار به اینها در باب سی و پنج نجاسات ایشون آورده. فقط حدیث شماره چهاره که ایشان در این باب نجاسات رو و در باب آثار ایشان نقل نکردند این یک نقطه دیگه آیان در ذهنشون باشه ما دیروز در بحثمون درباره شماره سه حدیث شماره سه که مرحوم شیخ توصی عرض کردیم منفردن نقل کرده انال حسین سعیل ابن سنان که محمد باشه انال ابن موسکان عبدالله باشه قال قال ابو عبدالله کل اینیست خطفل بر لیس له مثل لعوار بابل و اشباح دالک خلابر مرحوم من دیروز عرض کردم که این منفردات شیخ توسیست است کما اینکه عرض به لحاظ سند هم شبهه‌ای داره اولا ابن سنان و ثانیاً ابن مسکان و نبی عبدالله مستقیماً نقل عقل نمی‌کنه باید مثلا یک واسطه‌ای باشه بین عبدالله عبی و عبی عبدالله بعد که مراجعه میکردین به همین اوواق ما اموسلق دید نخل آه این مرحوم شیخ هم مرحوم کلینی هم این حدیث نقل کرده این تدارک بکنین ما دیروز گفتیم از منفردات مرحوم شیخ نه از منفردات مرحوم شیخ نیست مرحوم کلینی هم نقل کرده نقطه که سکر میکنم بایی آهوی که مراجعات به حدیثی داشته باشند خیلی ذرافتشون درشون واضحه اصولاً یکی از اهدافی که کتب مجامع حدیثی یا جوامع حدیثی نوشته شده در این که انسان بتونه احاطه پیدا بکنه به حدیث و خود مرحوم صاحب وسائل در مقدمه وسائل مسائل یه ملاحظه فرمایید در همین شاپ آیین و آرزه اشاره همین مطلب رو خودش هم وارد کرده این کار رو خود مرگون و صاحب وسائل بله ایشون در اینجا نوشته که از اهداف خودش در مقدمه ذعیف صحیحه هر جلد اول در و من طالع اطلاع علامه تفقد لجماعه من الاحصاب فی هاذ الباب مثل حکمهم علی كثير من الروايات به انها ضعیفه تو مع وجودها بطرق اخرى هی عندهم ايضا صحیحه تو راست مثلا علامه رحمه الله ادعی از روایات رو نقد میکنه مثلا از کتاب تهذیب میگه ضعیفان باکن همون روایت با همون سند کافی است به طریق صحیح یکی از اهداف مجموعه های حدیثی همیشه همینه چون احادیث رو از مسادر مختلف و اصانید مختلف نقل میکنه که اگر یکی اشکالی داشت بسنه با دیگری انسان اشکال رو حل بکنه و ارز کردیمی که از کارهای صاحب وسائلی که از مشکلات صاحب وسائلی که یک حدیث رو کامل استخراج نمیکنه همه جان هم کامل استخراج میکنه مثلا فسن در سه تا مستره هست از یکیش ن و از عجایب کاری ایشونه که مثلا یه حدیث رو ایشان سه بار یا چهار بار تکرار میکنه در یک جا کامل نمی‌گفتن در دو جا ناقص میکنه. میکنه هم چیز غریبی است ایشان رحمه الله الان که این حدیث که من دیروز خوندم روایتی بود مال حسین سعید ابن مسکان حرف کردم از منفردات مرحوم شیخ طوسی این اشتباه بود حدیث شما لرسه مرحوم کلینی هم این رو داره ملاحظه فرم این کتاب الان نیست ابواب الماء المطلق جلد اول از کتاب وسائل ابواب الماء المطلق باب 17 شماره حدیث 11 و حسب همین چاپی که الان دست من هست فرفه 185 حدیث اینطور محمد ابن یعقوب ان اندت من اصحابنا ان احمد بن محمد که اینجا هشعهیه ان حسین سعید شیخ مستقیم از حسین سعید نحل کرده مرحوم شیخ مستقیم از حسین سعید نهار کرده لکن در اینجا مرحوم کلینی به طریق احمد اشعری از حسین سید نهار ان ابن سنان حالا برگیرم به طریق کلینی ابن سنان همون محمده که ارز کردن ان ابن مسخان بعضی از آیان مجالی بحثی دارن مثال به این زدن گفتن که اگه شخص مردد بشه به این دو نفر سخه و غیر سره هم میشه به مثلا ابن سنان در یک سنان اگه مردد بشه با محمد ابن سنان که غیر سفه است و عبدالله ابن سنان هم نمیشه برای عبدالله ابن سنان خب این رو عده نوشته بودن سابقه حتی از الان بعد فهمیدم خیلی حرف نادرستی اصولاً ابن سنان قابل تردید نیست تببتا با هم فرق میکنن طبقه محمد به طبقه عبدالله است دو تا طبقه متمایزند به طبقه شناخته میشه مشترک ما نداریم ما حدیثی که توش ابن سلام باشه قرار بین محمد و عبدالله باشه اگر حسین سعید نقل بکنه چون ایشون شاگرد عبدالله عبدالله بن نیست حسین سعید از محمد نقل کرد ابن مسکان دقیقا مثل نقل شیخه لکن داره عن ابي وصير قاضي التوابردله اینجا نام ابي در نسخه کلی اومده در نسخه مرحوم شیخ عبی بسیر نیست در نسخه شیخ حسن ابن مسکان قال قال ابو عبدالله و جواب این مطلب هم به نظر من دیگه کاملا برای روشن شد مرحوم کلینی از نسخه از حسین نقل کرده که در اون نسخه کامل اسم بوده اما مرحوم شیط توسی از نسخه از کتاب حسین سعی نقل کرده که اون نسخه خرابی داشته سرخ داشته این مرحوم شیخ توش بوده ارمی مستان قالقال ابو عبدالله تصرف درش نکرده این دقت فرمودید و لذا یک بحثی است که از کردم این در تاریخ شیعه ما علمایی که بعد از این مثل مرحوم شیخ و کلینی آمدن تا مدت ها رو همین متونه این کتاب ها فتوا می و نقل می کردن و تصرف نمی کردن. اولین بحث و تصرفایی که ما دیدیم مرحوم شهید سانی در گرایث خوب ایشون اولین کسی است که میگه که مثلا مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار احادیث نقل میکنه که با کافی فرق داره ایشان توی شیعه تقریبا اولین کسی است که مقایسه کرده این دو تا رو با هم دیگه اینا اختلاف داره شاد ایشان مرحوم صادق معالم این رو کاملا پیگیری کرده این حرف رو کاملا و انصافا این منتقل جمان هم عرض کردن کتاب بسیار خوبی سوائد هفتی این کتاب کامل نیست و همه عباب فرق رو ندار تا هج داره اون مقام که داره باز یک جادی کامل نیست خصوص را تصحیل یه مقدار اختلافات و ایشان بررسی کرده بعد از اینها دیگه تقریبا این بحث ها در کتاب ما آمند وقت این مشکل عرف کردم من تکرار می‌کنم چون خیلی فایده داره این مشکل کجا شد دیدن بین متن کافی با تهذیب با با متن واحد با, با روایت واحد با, با مضمون واحد اختلاف هست آمدن مشکل رو بر مرحوم شیخ قرار دادن عرض کردم مرحوم صاحب‌الذائقه آی خویی در مقدمات موجم مرحوم استاد در مقدمات موجم عبارت صاحب‌الذائقه رو آوردند خود ایشان. من چند دفعه هم ارز کردم عبارت صاحب مکرر در هدایت. ایشان یک جاشو آوردن شاید من تا حالا چهار جا در هدایت دیدم. میشون بازی همون عبارتی تکرار کرده خلاصه عبارتی ایشان که قل ما تو جد روایتون اندشیخ سلمتون از زیادت او نقصان او تحریف او تسیف سندن او نهن و در دیارم ارز کردم انصافاً بسیار عبارت توندیس متصور نمی‌گریم مثل صاحب‌حضره چین مطلبی رو به شیخ قنوشه خود تائفه میگن مثلا شیخ قنوشه به این روزگار در بیا بی حال اون طارزه مشخص میشه که اصلا روایت رو یا زیاد کرده یا کم کرده یا تحریف کرده یا تحریف کرده یا سرش خراب یا متن خراب خب پس دیگه چی میونه از شیخ سر. تو اینا انصافا یه کمی توندروی است و از مثل داره که اخباری خیلی تعجبی داره و هر حال مثلا از اشکالاتش همینه خب مرحوم شیخ کلینی از حسین سعید نقل کرده عن ابن مسکان عن عبی بسیر قال سألت ابو عبدالله در کتاب شیخ داره ابن مسکان قال قال ابو عبدالله ابو بسیر حرج شده و همون بحث معروفی من اشاره کردم ابن مسکان میگن مستقیم از امام صادق نقل نمیکنه نتیجهش این میشه که روایات رو طریق شیخ ارسال داره خب این به هر حال یک مشکلی است که شیخ ورودی کلمه عبیصیر رو حذف کرده از سند خراب شده خراب و توضیح این مطلب داده شده بله اگر شیخ طوسی خوب دقت بکنید از محمد ابن یعقوب نقل بکنه به اختلاف داشته باشه چون هم تازه هم در اختلاف نسخه میشه در اینجا دقت نشده مرحوم صاحب ادای دقت نکرده شیخ طوسی از مصدر دیگه نقل کرده یا از نسخه دیگه اون مصدر دقت خود عنایت بفرمایید گاهی از مصدر دیگه نقل کرده مثلا میگه انا حسن محبوب ابن موسکار من باب مثال مصدر شیخ میگه حسن محبوب مصدر کلیمی میشه حسین سندی گاهی اوقات از نسخه دیگه نقل کرده مصدر یکیه کتاب حسن سندی نسخش مختلفه گاهی اختلاف مصدر گاهی اختلاف نسخه هست. و به نظر ما من واقعا همینطور طور بر اعتقاد ما اینه که این دلالت بر کمال دقت و امانت شیخ طوسی است یعنی مرحوم شیخ طوسی ممکن بود نسخه حسین سید که مقابلش هست توش دستکاری میکنه به اصطلاح امروز آینی که تصحیح کتب میکنن یعنی تصحیح قیاسی خود ایشان مثلا بگه این در کتاب حسین سید در این نسخه آمده که ابن مسکان و نبی عبدالله خب ابن مسکان که نقل نمی کنه کافی هم که نقل کرد در نسخه کافی ابن مسکان خودش اضافه میکنه انعوی رو که مثلا تحقیه قیاسی باشه بگه از نسخه من افتاده انعوی باسیر از نسخه ایشان افتاده شیخ به جای این کار از نسخه کما وجده ها نقله ها و این به نظر ما به عکس عبارت خوب دقت پرمونی به عکس عبارت مرحوم سامه دار این دلاته برای عظمت شیخ میکنه در تصاهر شیخ و شیخ قد از الله نفسه با این ترتیب اختلاف نسخ رو برای ما حکایت کرده. پس مرجع این دعوا برمیگرده به دو نسخه از کتاب حسین سعی. البته این هست ما موارد دیگه هم از کتاب حسین سعی در پیش شیخ دیدیم که خرابی داره. اختصاص به این نسخه نداره. اینچه الله تعالی چون اینجا این مسئله خیلی الان حساس نیست. این یک ای احتیاج به یک کاوش جدید داره من اینشالله تعالی یک فحص و براتی خاص و خودش رو میخواد چون این که به دنشته در شده ما احتمال میدیم که نسخه شیخ از کتاب و یه مقداری مشبه بوده البته این احتمال رو اثباتش الان با استقراء ممکنه نه با طرق معلوفه من الان اشاره ها آبره می کنم تفصیلش اینشالله باید بعد عرض بکنم طرق معلوفه این است که ما برای معرفت نسخ شیخ برگردیم به مشیخه این طرق معلوفه چون شیخ در مشیخه گذنه ماکان حسین سعید این طوری طریق خودش به حسین سعید داره اون طریقی در مشیخه از خوبه هیچ مشکل نداره یک شرحی هم داره اون طریق هم ایک شرحی داره لکن ما باورمون نمیشه که شیخ فقط از اون طریق نهار کرده باشه استقراع نشون داده که شیخ احتماله استقراء از کردن ولیزا این... این کار خیلی فنی و بسیار ظریف و مشکلیه استقراء امانشون داده که شیخ از نسخه دیگر حسین سعیل هم و داده و الله در محل خودش متعرض میشی اولی کسی که شرح کامل رو داده بره اون نجاشیست عبارت نجاشی دوست فهمیده نشه نظر نجاشی پنج نسخه از کتاب حسین سعیل معرفی میکنه که به حسب آنی که در نسخه آمده اون که در اختیار شیخ بوده از نسخه بسیار صحیح هست درش بحثی نیست اما عملا ما در کتاب شو سه این خلل میبینیم عملا حالا توضیحاتش و مبانیش و ریزکاری‌هاش، کاریهاش اینشانه جلسه ای که بحث خیلی کلیدی باشه اینجا خیلی بحث کلیدی نیست علایه حاله معلوم شد که این رباید در کتاب مرحوم کلینی هم آمده آخرش هم همینه بعد در آخرش میگه که و, و اون روایت شیخ بود کل شیعن یس قطف البعر لیس لهو دمون مثل اغارب و الخنافس و اشباه دالک خلاف است همین در ذیل اوارد کلیمی آمده و کل شیعن وقع فل بر بجای به از قطف لیس لهو مثل اغارب و الخنافس و اشباه دالک خلاف است دیگه عقرب و عقارب اختلاف نوسته مهم نیست من توضیحات کافی دیگه فکر کنم یه نسخه این کامل شده باشه در خط قدیم عقرب و عقارب مثل هم می‌نوشتند الف متوسط در خط کوفی نوشته شد عقارب رو هم می می‌نوشتند دیگه مونده بود فقط به قرائت به قرائت و مشایخ که تشخیص بدن که آیا جمع یا مفرده الان که ارتباطکان این مطلب هم انشالله شاء الله تعالی روشن شد من اشاره کردم از انفرادات شیخ خیر از انفرادات شیخ نیست حالا از خیلی ما دو تا روایت داریم. یک روایت دو طایفشون روایت ما. یک طایف روایت ما اقرب رو با خنفسا یعنی سوسک رو با کجدم جدا کرده. در یک روایت این دو تا رو مثل هم گرفته. اون روایتی که جدا کرده ابو بصیر اعنی ابی جعفره. اون روایتی که, و اون روایتی که با هم گرفته سماعن نبی عبداللهه. اون روایت دیگه میگه مثل همه باز ابو بسیر هم عبدالله مثل این روایت که میگه هر دو مثل همه و روایت دیگه هم داریم از ابو عبدالله که مثل همه و روایت از حلوت موسیقی جعفر هم داریم که مثل همه پس درباره باره این دوتا دو جور روایت هست حالا مرحوم کلینی یه نقطه دیگر هم من چون کراراً عرض کردم آنان از همین الان که مشغول کارهای علمی میشن ر واب کلینی رو در حاشیه کتابشون بنویسن از کردم سال و که اسم نبرده یعنی مجای حدیثی ما اسم نمیبرن مثل بهار یا مثل وافی یا مثل معالم عوالم یا مثل وسا این لغتی شده پیش که مثلا اسم کتاب رو میبرن کافی باب رو نمیبرن این عاویم که حالا دو تا چخاب از این کتاب شده مع روایربانی اینشون هم اسم میبره. و در که اینطور نیست بر کلی رو اناویین خیلی حساسه. این اشتباه نشه مثلا مرحوم کلینی این ووایت رو که اقرب و خنفسا کشد و مسوس رو مثل هم گرفته این باب بله درباب البعر و مایق و فیها آورده این روایت رو. درباب بیر آورده خودش هم دارده کلش اینی از خطفل فلبه اما اون روایتی که میگه دو تاست که سوال میکنه که کلینی هم عرض کردم نقل کرده اون سوالی که اون روایتی که میگه دو تاست اون سوال اینه که بله این دوازه کلینیست که که انجرتن وجه دفیه خنفسا قد قال قاله علقه ها و توضعنه بندازش بیرون به انکان اقربن فعرقل ما و یوتوضع و توضعن من ما این غیره بگر فرموزید شاید اینه باب دیگری مرکل این روایت رو مرحوم کلین در باب الوزو من سعر دواب و سبا و تیر بابش عوض کرده اینه به عنوان سعر گرفته و به اصطلاح ملاقی بدن گرفته اون رو به عنوان چاه گرفته شاید نظر مرحوم کلینی شاید از من شاید من نمیتونم نسبت بدم چون خیلی مرحوم کلین دقیقه یعنی خنفسا و اقرب به لحاظ چاه یک حکم داره خوب دقت بکنیم فرقی نمی کنه. اما خنفسا ها و اقرب به آب کم کوزه به کوزه. لحاظه آب کم دو تو حکم دارن پس اگر آب زیاد بود هر دو یکی هست فرقی باهم هم کنن اما اگر آب کم بود در خنفسا اون اون سوسکو بنداز بیرون با اون آب وضوع بگیر اما اگر اقرب بود نه آب رو بریز با آب دیگری وضوع بگیر جل جل جل. شاید ارز میکنم شاید شده ما مرحوم کلینی آراء فخری ایشان نقل نشده. اونجیه که ما از آراء فخری الان و بعد از این به ایشان نسبت میدیم، ایرادش برای روایت رو خود دچار بکنه این که رأی فخری شما خبر دادید. شاید به این ترکیب بین این دو جمع جام حالا ما الکر با چیکار بکنم؟ عرض کردم راه‌های بین اصحاب ما هست. یکی از این راه‌ها، یکی از این راه ها همین نکته است که الان به اشاره کردیم و مثلا پسکون دو مورد که راه کلیدین شاید راه شاید هم ارزنی یکی از این راه ها این هست که ترجیح بدیم خب اون روایت یہی میگه از عبی جعفر سماه هر انا عبی وسیر انا جعفر سماه هر انا عبی عبدالله بگیم از حادیث عرض ترجیح با این از اون روایت داریم عبی بسیر انا عبی جعفر میگه دو تان عبی بسیر انا عبی عبدالله یعنی یکی کار مشکل. مید. از اون برام از امام جعفر روایت داریم که میگه یکی چون احدث اخذ به احدث رو این راهی بوده که افراد طی می‌کردن یه راه دیگه هم بوده که این راه رو قدم های اصحاب ما طی می‌کردن و این هم یکی از مراجعات بوده و اون این بوده که اگر دو تا حدیث داشتیم یکیش معلل بوده که غیر معلل حدیث معلل رو اخذ بکنه یا به عبارت دیگر دو تا حدیث داشتین یکی کبرا هم داشت با اون مراجهه اصلا معلل بر غیر معلل مراجهه چرا؟ چون در حدیث معلل اینه که علت توی ذکر شده در حقیقت حکم دو بار آمده یکی در تحت عنوان کلی که علت باشه یکی هم خود مورد است پس این بر حدیثی که یک بار ذکر شده مقدمه وقت در, در حدیثی که از عبی بسیر الان کندی من عبی عبدالله عنوانش اینه کلو شیع یسقطو فی البر لیس لهود مثل الاغارت و خنافت یعنی که ما دو بار حکم آمده یه بار با عنوان اقرب و خمتسا آمده یه بار با عنوان کلشی این لحو دم لیس لحو حالا وقتی لیس لحو شد این که ما معلل میشه کبرا داره این حدیث امتیازش با اون در حدیثی که از ابی جعفر هست اینطور نیست در حدیثی که از ابی جعفر هست اینطوریه انجرت این و جدی فیها خان این ابی عبدالله بود، ابی جعفرش هم همینطوره. بلکه خان فسأ یا ما یا سلف زاوی قال نه، نه بازیده. اول تو فل اقرب قال عربه. اینجا رو عنوان کلی نیومده، دو تو عنوان آمده، یکی خنفسایی که یکی اقرب. اما در اون حدیث کلش یه انلیسه دم آمده. مثل اعواره و خنافس. پس ترجیح با این حدیث. و غیر غاله که از وجود لیکن به نظر ما فکر میکنم اصلا نوبت به وجود ترجیح نمیرسه اولا میتونیم باید دنبال این بحث رو بشه. بحث در ما اینه که اولا ثابت بشه این دوتا مرد از نظر شواهد ووسوخ که این دوتا مرد صادر شده از امام باغر فقط یک مرد از امام صادر دو مرد و از امام موسیقی جفر یک مرد به اصطلاح این باید ثابت بشه بش این نوکسبادر روشن بشه آیا شواهد بوسو بصو معید هست که این کلام صادر شده به نظر من شواهد بوسو قویه سماع ان اوی جعفر بعد خود سماع ان عبدالله شینده همون مکتب روشنده انصافا میشه قبولش کرد که این کلام از امام صادق و امام باقر صادر شده و بر فرض صدور دیگه این راه ها که نه معلل است اون غیر معلل اینها به درذ نمیخوره باید خود حدیث بیشتر دقت کرد. ببینید در اون حدیثی که داره در خنفسا که تفصیل قائله هم در روایت امام صادق هم در روایت امام باقیه خود دقت کنید خنفسا قد ماتت قاله الگه ها خودشی القا یعنی که جسم بیجانی جانی شده بندازش بیرون و یوتبالا منهو یعنی از اون آب وضو گرفته میشه و اینکان اقربا فعرقل ما خوب دقت بکنید خب اگر در اینجا که مراد قطعا حرمت شرم نیست چون حرمتی نداره حرمت اکل خود حیوان هست رفتی به آب نداره اون چه که در اینجا تصویر میشه اولاد از مسئله نجاسته مثلا مثل اغرب تسکیه لیسه لهودم لهودم درش تاثیر نداره چون عقرب قابل تذکیه نیست، حرام گوشه، فرق نمیکنه، حشرات حرام گوشتن، حنافس و عقارب اینا اصلا حرام گوشتن، تذکیه دهودم لیس لهودم در مقام تذکیه هیچ اثر ندارن، چون حرامن در مقام تذکیهشون وقت نشه، موقع خون داشته باشه مقام نداشه. دقیق فهمیدید؟ پس اگر نکسی در روایت هست نجاسته، نه حرمت. اینکه فرق نمیکنه، لهودن ولیس لهودا، علایین حرامه. دقیق کردی؟ پس نکته ای که هست نجاست اگر نقطه نجاست باشیم چون ما بگه ارقل ما چه نکته روی ما رفته بگه با آب دیگه بزرگی آب نجس لازم نیست که ما تکلیفی نداریم که آب نجس رو بریزیم این که میگه ارقل ما و خصوصاً یک ارتکاز و عرفی و عقلائی هست که اقرب همراه با سمه به قسم کنیم پس این اراغه ما به لحاظ نجاست نباد باشه به لحاظ نکته عدم استعمال این آبه خوب دقیق و اللهم هم با آب دیگه بود رو بگید من ما این قیل از این که داره در هر دو روایت داره لطیفش اینه یعنی نکته هم تو روایت امام باقی رو آمده قال عرقهو عرقهو این اون آب رو برید تو روایت امام صادق هم داره عرقه ها و امکان اقربن ما تصویح شده اینجا و توضع من ما این غیره از آب دیگری وزو بگیر به بعدی پس به نظر ما این روایت یک جمع عرفی بسیار مقبولی داره و هیچ مشکل خاصی نداره و مراد این است که این آب رو دیگه استعمال نکنن و عدم استعمال به خاطر نجاست نیست نجاست آب نیست عدم استعمال به لحاظ مسئله شروع آب و احتمال مسمومیت و اینها علا ایه دیگه در این بحث میشه از این وارد نشیم این راجع به ماله و نفس سائله یا ماله و دمون آیا بالاخر کدام عنوان رو قبول بکنیم ظاهرا فرقی بین دو عنوان نباشه قدمای اصحاب ما هم مثل مرحوم شیخ صدوق در کتاب مغنه خودش گفته ماله و دم و ماله و دم ریش این عبارت ما لهودم در کتاب اموار ساباتی آمده که قون دید هم مثل برهم شیخ توسی و و حتی کلینی من گفتم کلین تعبیر نکرده نه خیلی کلین رویت اوورده لهودم هم او و ادهی مثل در کتاب حفص سبن ما له و نفسون سائله بعدها فقه های ما این محنم اوورده البته این متن مشهور داره و ظاهرن مراد از لیس لهودم لهودم و ما لهو نفسون سائله کنایه از دستگاه گردش خون باشه یعنی هر حیوانی که ترکیب فیزیکی یعنی فیزیولوژی و زیستی و اینجوری باشه که قلب و ترکیب به سخون و دستگاه های سازنده خون مثل کبد اینها داره اینها میتشون نجسن و این بحث هم بشه بحث راجع به نجاست فعلا ما در میته از کرد این جهات متعدد داریم این بحث راجع به نجاست فعلا و این طور هم نیست که به اصطلاح البته این ملازمه هم نداره با معکول و بودن حرص کردیم اده از اهل سنت عنوان معکول و لحم رو او آوردن چرا؟ چون مثلا مخواستم بگن میته هی. مثلا با مثال سوسک و اغرب و مگس میتهشون نجست نیست اون خودشون معکول لح لحم نیست اون میته باشه مخواد نموشون بخواد معکول و نیستن لذا بعضی ها تعبیر معکول و لحم کردن از اهل سنت بند یا تعبیر به لهو نفسون سال از اهل سنت در روایات ما این متن آمده چرا حالا نکته روشن شد ما چون اشیایی داریم که به اصطلاح میته به به اصطلاح تاثیر داره در معکول الله بودن و معکول نه نبودن و نجس بودن و نجس مثل ماهی ماهی الان پیش اهل سنت آخه نکته ای داره اهل سنت میته ماهی رو پاک حلال میدونن روایتی بسیار معروفی دارم ان رسول الله درباره سؤال عن ماء البر فقال هو هو و هو و ماءه الحل و میتته این روایت در مصادر ما نیامده تایید نشده بلکه رازی ما به خلافشه مرحوم محقه یک جاورده و توجیه هم کرده به هر حال من وارد اون بحث نشم پس بنابراین ما دنبال و عنوان مأکول و لحم نیستیم ممکن از حیوان مأکول و لحمم باشه ولیکن ليس له نفس سائله در حالیه عنوان له نفس صائل غیر از معکول لحمه بله مثل اغرب همینطوره اغرب سوس که معکول لحم نیستن اگر میگفتیم میته غیر معکول لحم شامل اونا میشد لکه ما چون داریم چیزی که معکول لحم هست و ولی له نفس صائل مثل ماهی مثل ملخ که جایز عکلش درسته مثل ملخ و ماهی اینه که اصحاب ما و اهل بیت علیهم السلام این عنوان رو ده. خب تا اینجا این مطلب اول ما روشن شد مطلب اول ما که بوایات و آیات که اطلاق میته داره یک قسم میته به لحاظ نجاست خارج شد حالا میمونه بعد بحث بیش که آیا بیش جایزه نه اون بحث دیگه است که الان به ما نهنوزی نظامی بخواهم که این مسئله خیلی معت ترزون بکن بخش دومی که ما در باب میته داریم بخش های از خود حیوان میتر هم خارج کرده. خوب دقت بکنیم یا از نجاستش خارج کردن یا از هیلیت انتفاش، حرمت انتفاش خارج کردن یا از حرمت بیش خارج کردن یا از مانعیت صلاتش خارج کردن از بخش‌های از خود میته. حالا اقسام میته بود حالا نه. چون ظاهر حرمت علیکم میته تمام اجزای حیوانه. از کردیم دین از اهل سنت مثلا یا میگن تمام اجزایش استخوانش، پشمش، موش، کرکش هرچی که از کل اجزاء دانش به اصطلاح فرض کن همه قسمت هایی که من پوستش و غیرش اشکال داره, اشکال داره. حرام هست و همون آثار رو داره این قسمت هایی که شده اولین قسمتش پوست میته هست این قسمتی که معرکتال آرائه پوست میته معروف بین اهل سنت شده، البته معروف بین اونها در جایی که دباقی بشه بلو تد یعنی ولو میته باشه بقیه اجزای حیوان مثلا گوشت حیوان رو بذاریم خوش بکنی فایزان رو پاک نمیشه حلالا نمیشه خصوص گوش جل و پوست اگر دباغی شد پاک میشه و مانع نماز هم نیست و خیزه پروش هم میشه کرد منافع داره البته الان بحث ما در پوست میته است یه بحثی دارن باز توسعه دادن به کل حیوان ولو میتشم ولو حیشم اصلا درش میته تطویر مثل خوک و سک و اعرض کردید اقوال بین احل سنت کاملا مثل زاربه. از خوک و خنزیر گفتن پاک میشه به دباقی تا غیرشون و ادهی هم گفتن پاک نیمیشه به دباقی در بوزفن پاک نیمیشه چورسه به غیرش این نسبت داده شده مثل احمد محمبل و نسبت داده شده به مالک و نسبت داده شده به عمر بن خطاب و از صحابه و غیر صحابه مشهور علمای ما هم همینه انصافت و روایات با تأکید شدید که با دباغي پاک نمیشه پس اولین بحث ما استثناء، این استثناء پوست میته بلکه استثناء پوست سگ و خوب، یه بحث بسیار سنگی نیست بین آمنه که اون روز اقوالشون خودیم هفته قول رو از کتاب مجموع خوندیم. و اما بین اصحاب ما روایات ما تقریبا متفقان علیه به استثناء نادری که پاک نمیشه و روایتی داریم اطلاق داره که پاک میشه میشه از استفاده کنید یه روایت نادری هم داریم که بعد از دباقی به اندازه این دو تا روایت خائل هم داریم نسبت داده شده به ابن جنید که پوست میت با دباقی پاک میشه مثل آراه اهل سمنه و مرحوم شیخ صدوق قدس الله نفسه منتظرتر از ابن جنید در این مساله از عجایب کار مرحوم شیخ صدوق ظاهرش اینه که پوست میته پاک میشه بدون دباغی به که بگویید به انطفاءش جایز بدون دباغی مرحوم استاد در ببینید در کتاب اورد قدس الله نفسه در نجاسات که اعلائل طهارت اورد هست نیت رو داره و همین بحث اینجا هم داره ایشان مرحوم صاحب اوربه بحث میثرو مطرح کرده میثی مال لهون نفسون ساله غیر ساله بعدم بحث بیع می بی هم داره انتفال میثر هم داره همین بحثایی که ما الان داریم میکنیم غیر از مکاسب اگر آیش شوهره اوربه دارن مثل یا کتاب تنقیح و استاد اونجا هم ایشان دارن غیرت کتاب مصباح الفقه کی ایشان در مکاسب مرحوم فرموده در خود تنقیح هم آی خودی دارن استاد من بعضی مساله به تنقیح نظر می کنم آی الخودی در تنقیح فرمودن در بحث انتفاع به جلد میته بعد از اینکه روایت مرحوم صدوق رو ذکر کردن فرمودن این بعید صدوق قابل این باشه حتی بدون دباقی چون نوشتن که صدوق روایت معارظم آورده چطور میشه را قبول بکنیم و بعدم حتی اهل سنت با دباقی قبول کردن اجماعی است که با بدون دباقی نمیشه من نمیدونم حالا مراد استاد از اجماع در پیش اهل سنت چی؟ البته در کتاب مغنی هم به قدامه نعا که لا نعلم و خلافن لا یجوز و استعمال و نجسون قبلت دباغ ظاهران احتمالا لا نعرف خلافن بین اصحاب مذهب خودش کتاب مغنی کتاب بسیار خوبی از خیلی همبری ها صافت خود احمد حیلید استعداد صافه فبیه خیلی قوی بود اما این کتاب بسیار کتاب نافیه کتاب مغنیه نقدامه با اینکه که بسیار کتاب نافیه علایه حاله من از کردم ادهی از علمای اهل سنت انتفاع به جلد میکر مطلقا اجازه میدم ولو دباقی نشده یکی ظهریه یکی ظاهر عبارت بخاریه شراح بخاری هم نوشتن که ظاهر عبارت بخاری انتفار و مطلقا اینه که آه خویی فرمودن اجماع قطعی خلاف نه است نه چه این چیزی نیست این مطلب درست نیست خود اهل سنت هم خلاف دارن. به ذهن ما میاد همینطور که عبدی از علمای ما در کتب مثل علامه در مختلف اینا به مرحوم صدوق نسبت دادن که یا علامه مثل غیر علامه که مرحوم صدوق عشرز از ابن جنه انصافت عشرز از ابن جنه ابن جنه بالاخره گفتی جل با دباغی مرحوم صدوق ظاهره اعواد بدون دباغی و این رأی مشهوره بین اهل سنت چهرتا واسعتا جدا هم نجسه و هم یهرم الانتفاقه دقیق کردیم لیکن مرحوم صدوق این رو گفته زهری گفت این رو چون در رو... اهل سنت خب خیلیش واضحه چون در اون قصه ای اون حیوانی که بود مثل چه کردم که کشته بود در بعضی از نسخش و نسخه مشهورش که بخاری هم آوردهنده حلا انتفعتون ها زهری تبرشه کرده به اطلاقش گفته پیغمبر هم بعد از دبا خب از جلدش استفاده کرده خصوصش تو ده گونی تاثیر یی کردن ادمای اهل سنت که البته در بعضی از متونش داره حلا دبقتمور فن تفعتون تویش در بختمون داره لیکن توی مکن مشهورشون هلن تفعتون زهری تمسط کرده این که پوست میته بالخصوص خارجه پس با در میته قسمت دیگه الان مخیم بازم بشیم موارد استثناء که اون حرمت و حرمت انتفاع اینها شاملش یا نشه این مطلب و روایتی که ما الان در این جمعی خودیم آمند نگاه بکنم فتوای صدوقه ظاهر عبارت استاد اینه که صدوق روایت هم آورده من با مراجعی ای که به تغییر کردم ایشون روایت دیگه و در کتاب مقنه هم ایشان فتوای سریع میده که اگر خیکی باشه از پوست میته میشه توش آب خورد باش وضو گرفت توش دباغ هم نداره این مطلب که در فقیه آمده در کتاب مغنه هم سراحتا فتوابش لگه و معارض هم نقل نکرده نه در باب سید و زباهه معارض نقل کرده که جلد داتن تفاومن المیتت به ها و نه در کتاب تهاره ولذا به نظر نیاد که مرحوم صدوق عقیدش این بوده که با جلد مثل زهری از آمه مثل بخاری از آمه عقیدش این بوده که به جلد میتت مطلقا میشه انتفاع کرد. و انصافا هم انصافا هم قوله بسیار شازید فردا یک مقداری رو کلام صدوق انشالله کار میکنید رسال الله علیه محمد محمد محمد و نه چه بود به عشر و صدوقت نمیدونم ایک روز در این حاشی محنه خونده عشر یعنی به نظرم ابن جونایت قائل از دباغی، بعد از ذباقیشون بدون دباغی در همین موارد وارد حضور وحیان شدند. نه در این در نه اینجا در این در همه‌ی ما وارد حضور اینجا در همه‌ی ما نه اینجا در همه‌ی ما وارد حضور وحیان شدند. در همین بحث وارد به وحیان شدند. نه آدمی در در من اومه پولی داده که محمد بن که محمد بن جواد می خودش مکث کرد. خودش مکث کرد. باز انجام بله گفتم خب آیه از مرتضی من زنگ آمد گفت تمام بله تماس بگیر. بله رفتم پاسخ من که مطلب ایشون بود چون خوب از در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 ا نه خودتون می و, و سوال خوبی از که ت شده ن ودی پرزیدار و سراد خوبی قرار ابش از از آقای س هم تش ها برکن معجناقه می و کا می کافی اینا چند تا من برنامه جمع جناب کاری این نیست یع این نظر نظر اجازه ماجرین هندریه صدا نازان است و 60 مهرابیان اگر آمد خیلی چیز اگر آمورم اخر <تصفيق> بلند میایم که oder utan zängi så hade han bara vad han hade ändå och det skulle inte vara något som det är familjär så att det är att det är ju så här om det är mobil inte så här